لوئیزا بعد از بازگشت از سفر تقریباً 36 ساعت از اتاقش بیرون نیامد یک شنبه آخر شب از فرودگاه به خانه آمد. با اینکه برنزه شده بود، رنگش مثل گچ سفید بود و ما نفهمیدیم چرا. به ما گفت که تا صبح روز بعد کاری به کارش نداشته باشیم. گفت فقط میخوام بخوابم. در اتاق را بست و مستقیم رفت توی رخت خواب به نظرمان کمی عجیب آمد ولی از کجا خبر داشتیم کلن لو از همان بچگی آدم خاصی بود مادرم صبح برایش چای برد ولی لو لب نزد موقع شام مادر دیگر نگران شده بود تکانش داد تا ببیند زنده است از حق نگذریم، مادرم کمی احساساتی است آن روز پای ماهی درست کرد تا لو رو از اتاق بیرون بکشد چون میدانست پای ماهی چیزی نیست که لو از آن بگذرد اما لو لب نزد با کسی هم حرف نزد اصلا طبقه پایین نیامد همینطور که صورتش توی بالش بود گفت: مامی میخواهم تنها باشم. عاقبت مادرم تسلیم شد و ولش کرد. گفت: عوض شده خودش نیست. یعنی به خاطر ای از پاتریک تازه داره واکنش نشون میده؟ واکنش با تأخیر؟ بابا گفت: نه. موضوع پاتریک نمیتونه باشه. به نظرم بیخیال پاتریک شده. چون وقتی بهش گفتم که پاتریک زاینزار تا بگه که توی مسابقه نفر 150ام شده، هیچ توجهی نکرد. انگار براش مهم نبود فنجان چای را سر کشید و ادامه داد اینو هم بگم راستش رو حتی من هم زوغ نکردم که نفر صدا بنجام شده <تصفيق> نظرت مریض شده؟ هیچوقت اینجور نمی خوابید لابود از اونجا مریضی سختی گرفته من گفتم فقط خستگی پروازه مثل آدمهای صاحب نظر این حرف رو زدم دانستم مادر و پدرم هر حرفی که من در مورد چیزهایی که اطلاعاتی از آنها ندارند بزنم قبول میکنند خستگی پرواز اگه پرواز طولانی مدت این بلار سر آدم بیاره که من حاضر نیستم از تنبی بی جم بخورم جسی حضیزم درست میگم؟ مادرم سرش را تکان داد و گفت نمیدونم کی فکرش رو میکرد مسافرت اینطور آدم مریض کنه بعد از شام رفتم طبقه بالا در نزدم. اتاق هنوز مال من بود و با توجه به اینکه تمام هفته که مرخصی داشتم آنجا بودم حالا هم حقم بود که بروم به اتاقم. هوای اتاق سنگین و دم کرده بود. پرده ککر را بالا دادم و پنجره را باز کردم. لو هم با بیحالی قلتی زد، نور چشمش را میزد، ذرات گرد و قبار هوا در اطرافش میچرخید. دیوان چای را روی پاتختی گذاشتم. حالا برام بگو چی شد؟ مژه زد. مامی فکر میکنه ویروس ابولا گرفتی. سرش حسابی شلوغ و داره به همسایه‌ها که میخوان با این آژانس مسافرتی به سفر خارجی برن هشدار میده. حرفی نزد. لو آرام گفت. کلمو ویل کردم. چرا؟ خودش را بالا کشید و با حالت تندی لیوان را برداشت. فکر کنی چرا؟ قلب قلب چای را سر کشید. حالا روز خرابی داشت. انگار نه انگار دو هفته در جزیره موریس بود. چشمش ریز شده و قرمز بود. پوستش برونزه شده بود ولی پر از لک. موهایش به یک طرف فلو بودند. به قیافش می که سالها نخوابیده باشد اما مهمتر از همه این بود که به شدت محزون و قصدار به نظر می رسید تا حالا خوهرم را این طور ندیده بودم پس فکر می کنی که تصمیمش را عملی می کنه؟ سرش را به علامت تصدیق تکان داد بعد محکم آبده را قورت داد اه، توفه روزگار لو حالم راسترسی بد شد اشاره کردم کمی کنار برود بعد کنارش دراز کشیدم لیوان چای را دوباره سر کشید سرش را روی شانم گذاشت بلوز من تنش بود اعتراضی نکردم برایش ناراحت بودم دینا حالا چیکار کنه؟ این جمله را با صدای آهسته گفت مثل توماس وقتی زمین میخورد و میخواهد شجا بماند از بیرون سر و صدای سگ همسایه میآمد که در امتداد پرچین دنبال گربه های همسایه میدوید بعد واق واق آمیزش را شنیدیم حالا لابوت سگ با حسرت سرش را بالا گرفته و چشمانش از نومیدی بیرون زده بود کمون نکنم دیگه به کاری کرد خدای تو این همه کارو براش کردی این همه تلاش لو با صدایی که بیشتر به نجوا میماند گفت بهش گفتم لوبا. که عاشقش هستم ولی گفت که کافی نیست چشمانش گشاد و محسون بودند حالا چطوری میتونم به زندگی ادامه بدم؟ تنها عضو خانواده هستم که در مورد همه چیز اطلاعات دارم بیشتر از بقیه اهل مطالعه هستم دانشگاه می روهم. برای همین از من انتظار دارند که جواب هر چیزی را بدانم به خواهر بزرگم نگاه کردم سری تکان دادم و گفتم هیچ فکری ندارم واقعا نمیدونم روز بعد بالاخره از اتاق بیرون آمد. دوش گرفت و لباس تمیز پوشید. من به پدر و مادرم گفته بودم هیچ حرفی نزنند. به طور ضمنی گفتم که موضوع به دوست پسرش مربوط می‌شود. بابا ابرو بالا انداخت و طوری قیافه گرفت که انگار تا ته قضیه را برایش گفتم. فکر می‌کرد زیادی لیلی بلالای لو گذاشته ایم. لو تیکه نان تفت خورد. نهار نخورد. کلاه آفتابی بزرگ و نرمی سرش کرد و قدم زنان به قلعه رفتیم تا توماس به غذا بدهد. فکر نمیکنم اصلا دوست داشت برویم بیرون ولی مادرم اصرار کرد که به هوای تازه احتیاج داریم. این حرف از نظر مادرم به این معنا بود که میخواهد هوای اتاق عوض شود و ملافه های برد. دست توماس کیسه پلاستیکی پر از ریزنام بود و جلوتر از ما ورجه ورژه می کرد. ما از بچگی یاد گرفته بودیم که با گردشگرها خیلی راحت ارتباط برقرار کنیم. با آنها خوش بش طوری راه برویم که به کول پشتی افراد نخوریم. دوروبر زوجها نپلکیم و ما راهمان را کچ کنیم. قلعه از گرمای تابستان میسوخت، زمین ترک خورده و چمن تنک شده بود. درست مثل آخرین تارهای کله مردهای تاس. گل های توی گلدان ها بودند. انگار به استقبال پاییز رفتند. من و لو بیشتر ساکت بودیم. چه حرفی برای گفتن داشتیم؟ وقتی داشتیم از پارکینگ مخصوص گردشگرها رد می شدیم، دیدم که از زیر لبه کلاهش نگاهی به طرف خانه ترینر انداخت. نمای آجر قرمزش با شکوه بود. پشت پنجره های قدی سفیدش، داستان غمانگیز زندگی جوانی در جریان بود که داشت از دست میرفت. حتی شاید در همین لحظات. گفتم میتونی بری و باهاش حرف بزنی؟ همین منتظرت متظرت نگاهش را به زمین دوخت، دستش را روی سینه به هم گره زد و همین طور به راه رفتنش ادامه داد. گفت فایده ندل. بقیه را میدانستم بقیه حرفش را که بلند به زبان نیاورد. میدانستم که می بگوید احتمالا نیست، رفته. دور قلعه چرخی زدیم. توماس را تماشا می کردیم که از قسمتهای شیبدار دار پایین یا داشت برای اردک ریز نام در این فصل سال کارکنان آنجا معمولاً به خودشان زحمت نمیدادند بیایند و مراقب باشند اردکها غذای خارج از برنامه نخورند. همینطور که قدم میزدیم به خواهرم نگاه میکردم. به پشت برونزش که از بلوز دکلته بنددارش بیرون بود به شانه های افتادهاش و آنجا بود که فهمیدم زندگیش تغییر کرده است. حتی شاید خودش هنوز متوجه نشده باشد. حالا دیگر اینجا نمی مند. هیچ فرقی هم نمیکرد که چه به روزگار ویلترینر میآمد در هر حال خواهرم رفته بود. حالا هوای خواهرم عوض شده و با چیزهای تازهی آشنا شده بود. چیزهای جدیدی که دیده بود جاهای جدیدی که رفته بود همه و همه زندگیاش را تغییر داده بودند. بالاخره خواهرم به بینش تازه ای دست پیدا کرده بود. وقتی داشتیم برمیگشتیم گفتم اوه یادم رفت بگم وقتی نبودی برات از کالج نامه اومد بازش کردم. اولش فکر کردم مال منه. بازش کردی؟ من منتظر دریافت نامه برای کمک هزینه مجدد بودم. گفتم باید بریم مصاحبه. پلکی زد. انگار خبری از گذشته های دور رسیده است گفتم آها خبر مهمتر اینکه که مصاحبه فرداست واسه همین فکر کردم با هم کمی کار کنیم روی چیزایی که اعتمالا می پرسن. سرش سرش تکان داد و گفت فردا نمیتونم برم مصاحبه ای بابا چرا؟ با اندوه فراوان گفت ترینا نمیتونم چطور تو همچین شریعتی بتونم به چیز دیگه ای فکر کنم؟ گوش کن لو، خاله بازی که نیست. عقل تو از دست دادی؟ شانس یه بار در خونه آدمو میزنه. اونا تو رو دانشوی موسنتر از معمول میدونن. برای همین با اینکه الان وقت درخواست نبود، قبول کردن که باهات مصاحبه کنن. مسخرت که نیستن. مهم نیست. نمیتونم بهش فکر کنم. اما تو ترینا، لطفاً دست از سرم بردار. خب نمیتونه گفتم آهای روبرویش ایستادم و مانع راه رفتنش شدم چند قدم جلوتر داشت با کبوترها حرف میزد دقیقا الان وقتشی که باید در موردش فکر کنی الان وقتشه دوست داشته باشی یا نباید ببینی می‌خوای باقی عمرتو چی کار کنی راه را بسته بودیم مسافرها مجبور بودند از هم فاصله بگیرند تا رد شوند. همین کار را هم می کردند. سرشان پایین بود یا با کمی کنجکاوی به دو خواهره در حال جر و نگاه می کردند. نمی تونم. خب، متاسفم. اگه یادت رفته باید بهت بگم که بیکار هستی. پاتریک هم دیگه نیست که حوضار و سر و سامون بده. اگه به این مصاحبه نری همین فردا پس فردا مجبور میشی بری اداره کاریابی باید بری کارخونه مرغ یا رقاس بشی شاید مجبور شی بری کنه مردم رو تمیز کنی تو خرجتو دراری قبول داشته باشی یا نه زندگی تو چیزی غیر از این نخواهد بود چون حالا نزدیک سی سال داری و هر چیزی که تو این شیش ماه گذشته یاد گرفتی به هدر میره به من چشم دوخت، خاموش و ساکت و با برافروخته. هر وقت میدانست که حق با من است و جوابی ندارد این قیافه را به خودش می گرفت. حالا توماس کنارمان آمده بود و دستم را کشید. ما گفتی کون خواهرم همچنان به من زل زده بود ولی میدیدم که در فکر فرو رفته است به طرف پسرم برگشتم نه عزیزم من گفتم خون حالا هم برمیگردیم خونه برای اصرونه نالو. بعد هم وقتی مادر بزرگ تو رو میشوره من به خال لو کمک می که به تکالیفش برسه روز بعد مادرم توماس را نگه داشت من و لو سوار اتوبوس شدیم. امید زیادی به مصاحبه نداشتم. برای همین تمام روز را رو در کتابخانه گذراندم و بیشتر نگران آینده خودم بودم تا او. شب موقع شام به لو نگاه می کردم که به بشقاب ماتش برده است. جوجه تنوری را کنار زد، طوری که انگار میخواست قایمش کند. مادرم رد نگاهم را دنبال کرد و گفت: عزیزم، گرووسنااد نیست؟ لو گفت؟ نه خیلی. مادرم اعتراف کرد هوا برای خوردن مرغ گرمه، فقط فکر کردم کمی حال بیای. بابا غذایش رو در نیمه راه دهانش نگه داشت و گفت؟ حالا برای اون بگو مصاحبه چطور بود؟ لو طوری حاج و نگاه کرد که انگار موضوعی که بابا پیش کشیده است به پنج سال پیش مربوط می شود. خوب. تکه کوچکی از مرغ جدا کرد و گفت. خوب بود. بابا نگاهی به من انداخت. شانه بالا انداختم و گفتم. همین؟ حتما بهت گفتن که چطور بود؟ درست شد. چی؟ نگاهش همچنان به بشقاب بود. لغمه در دهانم ماند. گفتن دقیقا همون کسی هستم که میخوان. اولش باید چند باید پیشنی از بگذرنم که یه سال طول میکشه. بابا به پشت صندلی تکیه داد. چه خبر خوبی؟ مادرم دستی به شانش گشید. <تصفيق> عزیزه چه عالی فوقلاده است. نه. خیلی دلتونو خوش نکنید گمون نکنم بتونم از پس از اینش بر بیام اصلا نگران نباش ببین ترینا چطور از پسش برمیاد. <تصفيق> بابا با آرنج به ترینا زد به ادامه داد راهی پیدا میکنیم ما همیشه راهی برای حل مشکلات پیدا میکنیم نه؟ بعد به همه لبخند زد به گمونم الان رو دنده شانس هستیم کنم کل خانواده روزه خوبی در پیش داره بعد خواهرم به یک بار زد زیر گریه، اشک واقعی، عین ابر بهار. عین بچه ها زار میزد شیون می کرد. آب از بیناش را افتاده بود و عشق ها بود که سرازیر میشد. اصلا هم برایش مهم نبود کسی بشنود. حقیق حق گریههایش مثل چاقو سکوت و اتاق کوچک را میبرید. توماس با دهان باز به حضور زده بود طوری که مجبور شدم بغلش کنم و حواسش رو پرت کنم تا نزند زیر گریه بعد وقتی من داشتم سر توماس را با بازی گرم می کردم و صداهای جور و جور در می آوردم لوبانها گفت همه چیز را گفت درباره ویل و قرارداد شش ماهه و هر آنچه چه در موریز اتفاق افتاد وقتی تعریف می کرد، دست مادرم از تعجب دهانش بود پدربزرگ با قیافه جدی گوش میداد. غذا سرد شد سس گوش در جا سوسی خوش گید. بابا با ناباوری سرش را تکان داد بعد خواهرم جزئیات پروازش را از اقیانوس هند تعریف کرد وقتی از آخرین حرفهایش با خانم ترینر میگفت صدایش چنان پایین آمده بود که بیشتر از نجوا نبود بابا صندلیاش را عقب داد و بلند شد. آرام چرخی میز میزد و خواهرم را بغل کرد. مثل موقعی که بچه بودیم. همانجا ایستاد و او را محکم و محکم به خود فشرد. یای سامسی. مرد بیچاره. طفلکی تو. یای سامسی. یادم نمیآید آید را هیچ وقت این طور پریشان دیده باشم. چه به بهم ریخته ای؟ همه اینا رو گذاروندی؟ بدونی یک کلمه حرف به ما؟ و از همه این جریانات فقط کارت پستال از مجسواری اونجور چیزاش به ما رسید؟ باورش برای مادرم سخت بود. ما خیال میکردیم رفتی به بهترین سفر عمرت. خواهرم به من نگاه کرد و گفت تنها نبودم ترینا میدونست دونست خیلی هم کمک کرد همینطور که توماس را در آغوش داشتم گفتم کاری نکردم حالا که مادرم جعبه شکلات جلوی توماس گذاشته بود پسرم دیگر توجهی به حرف ها نداشت من فقط گوش شنوا بودم خودت همه کار رو کردی و ایده همه مال خودت بود لو به طرف بابا خم شد. درمانده و ناتوان به نظر می رسید. گفت. بزیده خوب از آب در اومدن. بابا چانه اش را کچ کرد. طوری که در میدان دید لو قرار بگیرد. تو هر کاری از دستت برمیومد. دریغ نکردی؟ ولی موفق نشدم. بابا موی لو را از پیشانی عقب داد. چهرش مهربان بود؟ گفت کی گفت موفق نشدی؟ حالا که به ویلترینر فکر میکنم به مردی تو شرایتون یه چیز بهت میگم کسی توی دنیا وجود نداره که بتونه این مرد رو از تصمیمی که گرفته برگردونه ذات خودشه آدم نمیتونه ماهیت رو عوض کنه مادرم گفت ولی بیچاره والدینش نباید بشینن و تماشا کنن که خودشو میکشه. اینا دیگه چه جور آدمایی هستن؟ مامی. آدمایی هستن مثل بقیه. طبیعی طبیعی. خانم ترینر واقعا نمیدونه بعد چیکار کنه. خب اولش این که نباید ببرنش به اون کلینیک کوفتی. تصوانی بود. گناهایاش سرخ شده بودند. من برای شما دو نفر برای توماس می جنگیدم. تا نفس آخر می جنگیدم. من گفتم حتی وقتی هم قبلا دست به خودکشی زده باشه و واقعا این داشت می کاترینا این مرد مریسه افسرده است افراد حساس و آسیب پذیر نباید این فرصت رو پیدا کنن که دست به کاری بزنن که کم کم ساکت شد و چشمش را با دستمال خوش کرد این زن قلب نداره قلب نداره لورا درگیر کردن خودشونو خلاص. وای خدای من تو مثلا قاضی هستی قاضیا ها میدونن درست و غلط چیه دوست دارم منی الان برم بیارمش اینجا موضوع پیچیده است به این سادگی که فکر کنین نیست نه نیست این جوان حساس مادرشم اصلا متوجه موضوع نیست من که واقعا شکه شدم مرد بیچاره ای مرد بیچاره مادرم از سر میز بلند شد و دیس غذا را برداشت و با قدمهای بلند باش آشپسخانه رفت لو نگاهش میکرد که داشت میرفت قیافهاش اندکی بهد زده بود مادرم هرگز عصبانی نمیشد فکر کنم آخرین باری که شنیدم صدایش را بالا برد سال 1993 بود بابا سرش را تکان داد ظاهرم فکرش جای دیگر بود حالا یادم اومد عجیب نیست که آقای ترینه را ندیدم نمیدونستم کجاست فکرم خونوادگی به سفر رفتن نیستن نیستن دو روز گذشته ندیدمش لو تلپی روی صندلی افتاد من گفتم کند بزنم فوری با دستم کشای توماس را گرفتم فردا لو به من نگاه کرد بعد هم به تقویم روی دیوار سیزده همه اوت فردا سیزده همه روز آخر لو هیچ کاری نکرد. پیش از من از خواب بیدار شد و از پنجره آشپزخانه بیرون را تماشا کرد. باران می‌بارید. بعد هوا صاف شد. دوباره باران بارید. کنار پدر بزرگ روی کاناپه دراز کشید. مادرم برایش شای آورد. هر نیم ساعت یک بار می دیدم که به ساعت روی پیش بخاری نگاه می کند. لحظات سختی بود. برای همین توماس رو بردم شنا. خیلی هم تلاش کردم لو را رازی کنم با ما بیاید. به مادرم گفتم که اگر بعداً لو حاضر شد تا با هم برویم خرید، توماس را نگه دارد. گفتم که با خودم میبرمش برمش کافه. فقط خودمون دو نفر، اما لو با هیچ کدام موافقت نکرد. لو با که فقط من میشنیدم گفت. "ترینا، نکنش اشتباه کردم. به پدر بزرگ نگاه کردم. اما حواسش به مسابقه بود. فکر کنم پدرم سر مسابقه با او شرط بندی کرده بود. هرچند خود پدرم به مادرم میگفت که نکرده است. منظورت چیه؟ یعنی باید باش میرفتم ولی، ولی تو که گفتی نمیتونی. بیرون آسمان خاکستری بود. لو از پنجره تمیز خانه به روز غمانگیز و دلگیری که بیرون خانه در جریان بود، چشم دخت. گفت، میدونم چی گفتم، اما بیخوری هم از میکنه دمو ندارم. صورتش اندکی در هم رفت، گفت، نمیتونم تحمل کنم که ببینم حتی باش خود حافظی نکردم. حالا نمیشه رفت؟ شاید تلاش کنی بتونی با اولین پرواز بری ها؟ گفت دیر شده بعد چشمش را بست به موقع نمی رزم. فقط دو ساعت مونده تا تا زمانش تموم شه توی اینترنت دیدم چیزی نگفتم و منتظر ماندم بعد از ساعت 5:30 دیگه این کارو نمی‌کنه. می‌ذارم برای روز بعد. با سردرگمی سری تکان داد. مربوط به مقامات رسمی سوئیس میشه که باید اونجا باشه. دوست ندارم بعد از ساعت دری خودکشی رو تأیید کنم. مسخره بود. نمیدانستم چه بگویم. با علم بر این که جایی داشت چنین اتفاقی میافتاد نمی توانستم تصور کنم که بنشینم و منتظر باشم اینجوری که او منتظر بود. من هیچ وقت مثل لوک عاشق ویل بود، عاشق مردی نشده بودم. البته مردهای بودن که دوستشان داشتم، قطعاً و مایل بودم با آنها ازدواج کنم. گاهی فکر می کردم شاید کمی حساسیتم را از دست دادم. اصلا نمیتوانستم تصور کنم که برای کسی این اینجور زانوی قنبغل کنم. فقط برای توماس بود. فکر اینکه که توماس در یک کشور بیگانه منتظر است بمیرد واقعا حولناک بود. حتی فکرش هم دیوانه هم می کرد. اصلاً حاضر نبودم به چنین چیزی فکر کنم. کنار خواهرم روی کاناپه نشستم و ساکت و خاموش مسابقه ساعت سوه نیم را تماشا کردیم. بعد هم مسابقه معلولان را در ساعت چهار پشتش هم چهار مسابقه ای که نشان دادند افرادی که کلی پول روی از شرط بندی کرده بودند شورا حیجان زیادی از خود نشان میدادند. بعد زنگ خانه به صدا درآمد. آمد لوب بلا فاصله از کاناپه پرید و رفت تا در را باز کند قلب من از آن حالتی که در را باز کرد از حرکت ایستاد ولی ویل نبود که در آستانه در ایستاده بود زن جوانی بود با هفت قلم ها را گش. موهایش به زیر چانه می رسید. چترش را تا کرده بود و لبخند بر لب داشت. دستش را به کیفش برد که از شان آویزان بود. من با خودم فکر کردم شاید خواهر ویلترینر باشد. لویزا کلارک؟ بله بفرمایید. من از گلوب میام. میشه صحبت مختصری با شما داشته باشم؟ گلوب؟ از آهنگ صدای لو پیدا بود تعجب کرده است. جلو رفتم. دیدم دفترچه‌ای دست زن است. گفتم: روزنامه گلوب میشه بیایم داخل؟ فقط میخوام گپ کوچولویی در مورد ویلیام ترینر با شما بزنم. شما برای ویلیام ترینر کار میکنید درسته؟ من گفتم: حرفی نداریم. و پیش از اینکه زن فرصت کند به حرفی بزند، در را محکم بستم. خواهرم مات و مبهوت توی راه رو استاد. وقتی دوباره زنگ به صدا درآمد به خود لرزید. آهسته گفتم. جواب نده. اما چطور؟ به طرف پله هولش دادم. وای خدای بزرگ، چقدر بیحال بود، انگار خواب بود، فریاد زدم. بابا بزرگ، در رو باز نکن. وقتی به پایرد پل رسیدیم گفتم از کجا فهمیدن؟ لبوت کسی به اونو گفته کی میتونست؟ صدای زن از پشت در میآمد دریچه مخصوص نامه پستی را رو بالا داده بود و از آنجا حرف میزد دوشیزه کلارک فقط ده دقیقه میدونیم موضوع حساسیه دوست داریم از زبون شما مطالبی بشنویم چشمان لوپر از عشق شد. یعنی تموم شد. خودکشی کرد. نه. فقط اولاقی اومده و میخواد این وسط پولی به جیب بزنه. داشتم با خودم فکر میکردم. صدای مادرم از راه پله به گوش رسید. بچه ها! کی بود؟ هیچکس. کس! در رو باز نکن! از بالای نرده راه پله به پایین نگاه کردم. دست مادرم خواب دستمال بود و به اندام مبهم زن که از شیشه در ورودی خانه نمایان بود نگاه می کرد. جواب نده. دست خواهرم را گرفتم. لو، به پاتریک که چیزی نگفتی؟ گفتی؟ نیاز نبود چیزی بگوید. خیافه مصیبت زدش گویای همه چیز بود. خب، حالا نمیخواد نگرانشی، فقط دم در نرو، به تلفنم جواب نده، یک کلم هم چیزی نگو، باشه؟ مادرم اولش توجه زیادی نکرد، حتی وقتی هم تلفن زنگ زد، باز هم توجه نکرد. بعد از تماس پنجم بود که پیامگیر را رو روشن کردیم، ولی همچنان مجبور بودیم به حرفشان گوش کنیم. صدایشان در راهروی کوچک خانهمان میپیچید، چهار نفری زنگ زدند. همه مثل هم بودند. همهشان از لو می که داستان را از زبان خودش تعریف کند. ویلترینر حالا کالایی شده بود که میخواستند به چنگ بیاورند. تلفن زنگ می زد. زنگ در خانه یک سره به صدا در میآمد. ما پرده ها را کشیدیم و نشستیم و به گزارشگرهایی که در پیاده رو جمع شده بودند گوش دادیم که با هم و با تلفن همراهشان حرف می زدند. این کار تحت محاصره بودیم. هر وقتی که شان میکرد پشت در بیاید، مادرم از فرد ناراحتی دستش را به هم می مالید و از دریچه مخصوص نامه های پستی سرشان فریاد می کشید و می گفت که گورشان را گم کنند. توماس از پنجره دستجوی طبقه بالا بیرون را تماشا میکرد و میخواست بداند چرا مردم جلوی خانه ما جمع شدند. چهار تا از همسایه ها زدند. میخواستم بدانند چه اتفاقی رخ داده است. بابا ماشینش را توی خیابان آیوی پارک کرد و از در پشتی به خانه آمد. با هم نشستیم و راجع به قلعه حرف زدیم. بعد که بیشتر با خودم فکر کردم به پاتریک زنگ زدم و پرسیدم چقدر با بتش گرفته است. مکس کوتاهش پیش از جواب دادن همه چیز را برایم روشن کرد. فریاد زدم. آشغال عوضی. مگه اینکه که نبینمت. چنان لگدی به اون پاهای کوفتی دونده مارتانیت بزنم که فکر کنی واقعا گل کشتی که نفر صد پنجام شدی. لو فقط توی آشپزخانه نشست و گریه کرد. نه اینکه که درست حسابی گریه کند. بلکه فقط ریز ریز اشک ریخت. هشکهای خاموش که روی گونهش میقلزیدند و با کف دستش پاک میکرد. نمیدانستم چه باید بگویم. ولی به دیگران حرفهای زیادی داشتم که بزنم. تا ساعت هفت و نیم همه گزارشگرها به جز یک نفر رفتند. نمیدانستم سرانجام نامید شده بودند یا اینکه از دست تماس خسته شدند. چون هر بار که یادداشتی از دریچه مخصوص نامه به داخل میانداختند، توماس برایشان قطع های لیگو پرت می کرد بیرون. از لو خواستم جای من تماس را ببرد حمام بیشتر به این دلیل که میخواستم از آشپزخانه بیرون برود. میخواستم راحت به پیام تلفنی گوش بدهم و پیام های مربوط به روزنامه ها را پاک کنم. از طرفی هم توی حمام دیگر صدایم را نمیشنید.۶ آدم عوضی. بیست نفر، همه معدب، همه مهربان و دلسوز، پنزی تا حتی پیشنهاد پول داده بودند. دکمه حذف را یکی یکی زدم، حتی آنهایی که پیشنهاد پول دادند. گرچه باید اعتراف کنم، کمی وسوسه شدم که ببینم رقم پیشنهادی چقدر است. در تمام مدت صدای لورا می شنیدم که توی هممان با توماس حرف می زند. صدای جیغ توماس و شلپ شلپ آب هم می آمد. توماس با خودش بازی می کرد و ماشین اسباب بازیش توی کف صابون شیر میرفت. چیزهایی هست که تا آدم خودش صاحب بچه نشود متوجهش نمی شود. هممام، لگو و ماهی لغمه نمیگذارند خیلی به غم و غصه فکر کنی. بعد آخرین پیام را شنیدم. لویسه. کاملا ترینر هستم. با من تماس بگیر لطفا. هرچی زودتر. به پیامگیر ماتم برد. بعد دوباره پیام رو شنیدم. دوان دوان از پله بالا رفتم و توماس رو چنان سریع از همهان بیرون کشیدم که خودشم نفهمید چه شد. تماس حول پیش ایستاده بود. انگار او را محکم با باند بسته بودن. لو هم که مات و مبهوت مانده بود نصف پله ها را رفته بود که گفت اگه از عصبانی باشه چی؟ به نظر نمیمد که عصبانیه اگه روزناما دورشون کرده باشن چی؟ اگه فکر کنم من روزناما رو خبر کردم چی؟ چشمانش از حدقه بیرون زده و متوحش بودند شاید سعی زده که بگه کار تموم شده لو، محصر رضای خدا دست بردار، دست کم یه بارم شده توی زندگیت به خودت مسلط باش تا وقتی تماس نگیری هیچی معلوم نمیشه، همین حالا زنگ بزن، همین حالا راهی جزی نداری؟ خودم به حمام برگشتم تا لباس تنه تماس کنم، گفتم که مادر بزرگ برایش بیسکویت گذاشته و سری باش خانه برود از در حمام سرک کشیدم تا خواهرم را که داشت با تلفن توی راه رو را حرف میزد ببینم پشتش به من بود یک دستش را آرام روی موهای پشت سرش می کشید داشت می بله بده درست حتما بعد از لحظاتی دوباره گفت بله وقتی گوشی را گذاشت یک دقیقه همین طور به زمین چشم دخت من گفتم چی شده سرش را بالا گرفت هنگار تازه متوجه من شد که آنجا استدم هیچ ربطی به روز نمانه نداره صدایش از شک وارد بیهس بود هنوز زنده است لوبه حالتی لرزان لبخند زد از من خواست التماس کرد برم سویست حتی امشب تو آخرین پرواز برام جا گرفت.